من علیه السلام بنابرایتی در طول مدت‌های مختلف چادت سال در زندانی میکردن آخرین زندانی شوری که در بغداد بود جای مختلف از رفت زندانی میکردن علتی که جاهای مختلف از رفت زندانی میکردن چون نگربان ها تحت تحصیل قرار میگرفتن چیه میشدن اینا دیگه خسته میشدن هی جاشو عوض میکردن آخرین زندان بغداد بود کنار کاخه هارون زندانبان سندیه شاهد که یعنیه دشمن درجه یک امام کاظم رو نرسه. فقط اشاره میکنم تو منابع ما آمده بیش ازید اجازه بدید من زبانم نگرده و نگرده یکی از ایام که میخواستم شیعیان رو قریب بدن که امام اونجا مثال با عزت و احترام داره زندگی میکنه امام معوردن دده از سلام شیعه و رو استند علاوات امام بیا. اومدن. آبادن. امام امام اون مد حضرت آوردن لباس خوبش بهش و با یک مثلا زائر آراستهی ببین ما اجازه تمام داریم تزویین می‌کنید. امام علی السلام فرمودن به شیعیان بگو اینا رو نخورید. اینها حتی نقشه قصر بنا دارن. غذاها رو بیان فرودن. وقتی که امام برگرد برمی‌گردوندن به سدوع در بس از می‌کنن سدیه به شاهیتم با شلاق وارد صندوق. برینش تاریخچه‌ایه ولی این قدر دارید که در مناجات امام کازم هست که این عواخه بگه خدایی که یوسف و یعبو برگردوندید، خدایی که اسماعیل و حاجب برگردوندید، خدایی که دل دادر و شکاف دید میشکافید و روش رو و در عالم قرار رو خدای خدای خدای دیگه منو امامم از هر سر و کازم قیز این مونه بیارم کنه چیزی تو نکشید که امام رو مسئول کردن سلیمان قموی حارونه رو تراس کاخ حارون نشسته دید یه جنازه ای رو, رو روی تخت پارهی گذاشتن چهار نفر قریبانه دارن به طرف قبرستان بنی هاشم از بالا صدا کیه؟ چیه اگر سید نیست چرا قبرستان بنی هاشم اگر سید اجور قد مزلوبانه بیبرید قفتاد سلیمان نه تنها سید امام ساداته اون اون سب